حجر و برادرش و پسرش و شش نفر دیگه. نهتار و معاویه توی مزرعه ازرا بیرون شهر شام به خاطر اینکه زیربار معاویه نرفتن شهید کرد. بعد از اینکه اینا رو از کوفه دستگیر کردن و من اون راه کوفه به شام رو با اتوبوس رفتم نزدیک 24 ساعت راه ما با اتوبوس رفتیم مال یکی هم تو را معطل شدیم کبیره، خشک داغ اینا رو شترای برهنه سوار کرده. از کوفه تو اون مسیر آوردن شام به مزرعه ازرا که الانم حرم جناب خجره خدا با معرفت انشالله قسمت همه بکنه که هنوزم شما کنار ذریع حجوای میستید مثل اینکه از درون ذریع میشنوید واقعا میشنوید داره داد میزنه علی چون تمام وجودشو اشقالی گرفته بود من این حالت رو یکی تو حرم جناب و در اونجا دیدم یکی تو حرم جناب دعبل در شوشتر دیدم حرم دعبل هم همینجوره شما وقتی کنار زریح دعبل وای میستید هنوز هم که داره مدیه سرایی اهل بیت رو میکنه خوش به حالشون اینا رو آوردن تو اون مزرعه نزدیکی شامه گفتن کاغذ سفید امضا شده از طرف مابیه آوردن هر پستی میخوای بنویسی زیرش امضا شده فقط یه شرط داره علی رو سب بلند کن حوج گفت محاله ولی یه خواهش دارم خواهش چیه اول پسرم و جلو من گردن بزنید بعد منو گفتن چرا گفت پسرم جوانه میترسم اول منو گردن بزنید بترسه نکنه در اثر این ترس بلغزه. و از حریم عشق علی خارج بشه و این ننگ تو نسل من بمونه پسرم نگاهی به پدر کرد گفت پدر منم میخوام اول گردن منو بزنن و تو بدونی که من از این مسیر خارج نمیشم جلو پدر سر پسر رو زدم سر بریده پسرو گذاشتن تو دامن حج حج یه نگاهی کرد گفت پیش فاطمه زهرار رو سفید باشی که مرا پیش امیرالمومنین رو سفید کردی حالا میخاید منو گردن بزنید بزنید